بسم <تبارت> بیش الله الرحمن الرحیم از علی گوب تبریک عرض پیش پیشوپیشان علاوتستر این سلام الله علی او خیلی خوشحالیم از اینکه تو این جلسه حضور پیدا کردید البته کار بسیار ارزشمند و فاخری بوده که در خصوص شخصیت عالی اسلام حضرت هایتون لازم و این نشست برگزار بشه اما من البته معتقد هستم که در این نشست ها گفتن و رخن نیست و من امروز از اون مسادیخ هستم که باید صحبت بکنه و به هم چون از غب برنامه دیگری تداریت دیده شده و چون که من سفر که بودم پیگلی این جلسه بودم تو این هفته گذاشته این جلسات مکرر درس و بحث و حالا کارهایی که داشتیم من اجازه نداد که من یک فرصت معتنابهی رو و هایی رو بگذارم برای اینکه یک ای در موضوع بحث داشته باشم از این جهت امروز شاید فقط بتونم طرح حیثیت از مسائل رو داشته باشم و نکته های دیگری هم هست تو اینا حالا تو این بشه ها خیلی مناسب هست که وقتی طرح اون مباحث و مسائل بشه دو اینا پرساش و پاسخی هم صورت بگیره که یه مقداری زوایای قضیه بیشتر شفافتر بشه بروشتر بشه همطور که دکتر رهگار حالا برخی از نکاتی رو که از حیث کلامی مورد اشاره قرار دادن خب اینها جا داره که از این جهات اون شفافیت لازم صورت بگیره با ترجبه استناداتی رو که میشه در این زمینه انجام داد به کتبه مرموی تو لازمه آی صافی گل پایران من یک ای رو اگه اجازی بفرمید درباره باره شخصیتیشون رو بکنم که ایشون به واقع یک مرجع دینی و یک مرجع سیاست مدار و یک مرجع انقلابی بودن یعنی کل این کلمات رو که دارم می کنم با کد هست و, و با انایت هست قیل اصلا اون اوصاف فردی رو که برای این شخصیت وجود داره از توضع گرفته از توجه به اهل بهت علیه مسلام گرفته از فنائی که ایشون نسبت به حضرت ولی علیه سلام الله علیه داشتن گرفته و به واقع ایشون یکی از ارکان دلسوزان نظام و بود تا آخر اوم بشه. یعنی تا آخر اوم برای این باور بود و برای اعتقاد بود این اعتقاد و باید با توجه مجموعی آثاری که ازشون بر جای گذاشته حتما همطوری که اشاره شد لجنه های داده بشه در بخش های مختلف و نشست های تخصصی در دیدگاه های کلامیشون دیدگاه های فقهیشون و در حوضه های مختلف مطرح بشه اون چیزی که من حالا در این فرصت تونستم مطالعه بکنم یه مدداری در اون زمان به اصطلاح شورای نگهبان بوده که بداخلی 9 سال در اونجا حضور داشتن یک سال عضو بودن اما هست سال دبیر شورا بودن در خصوص جایگاه شورا و نگاهی رو که معظم در مورد جایگاه شورا داشتن اینها اگر مجموعه مذاکرات و گزارش هایی رو که در اون شورا صورت گرفته اشراف داشته باشه اطلاع داشته باشه که من یه مقدار شعال رو مطالعه کردم بر اساس اون از این بنظر میخواهمی چند نکته رو اشاره کنم و به هر هرهایشون در بخشی از نظام به عنوانی کارگزار قدی که از جایگاه‌های های مهم نظام حضور داشتند با جامعیتی رو که داشتن اونی رو که می خواهم در اینجا مورد اشاره قرار بدم اینه که نظام از سه رکن برخوردار هست یک رکن اسلام هست دوم دوبون رحبریس و رکن دوم هم مردم هست من اون مقداری که فهمیدم حالا به نظر مثل شاید جامعه هم نباشه ولی شاید کلیاتش همین باشد اینها. در این بحثی تدری نکاتی رو مورد اشاره قرار خواهند داد ایشان معتقد هستند که اسلام یعنی به معنای دقیق‌تر فقه و شریعت شریعت به معنای خاص تو شریعت به معنای عام داریم و خاص شریعت به معنای خاص احکام میگه قابلیت برنامه‌ریزی حکمیت دینی رو دارد این روزه دو تا دیدگاه وجود داره در مورد اصل اسلام و دین یه نگاه حده دارن یه نگاه حده دارن بر طلاز ما آی صافی نسبت به این حوزه نگاه حده اکسری دارن نه حده نگاه حده اقلی و سکولار هست که اونها یک باوری رو در این حوزه دارن معتقدند که همونطوری که جناب های بازرگان هم بعدها تا همین سمت رفتن افتدا خوبشون باورمند نسبت به نظام دینی کارامد اسلام بودن ولی بعدها دیگاهشون عوض شد در اون مقاله و هم که ازشون چاپ شده در رابطه با اینکه که خدا و رای انبیاء و خدا و یا باورمندی و آخرت آمدن این حرفی رو که معمولا زده می شده ولی شخصیت آیت الله اسمه صافی گذبایگانی محکم و قوی حالا من چند تا از نکته هاییشون را از خواهن کردیم معتقدم به این که ما باید نسبت دین و کارامدی دین نگاه حد اکثری باشیم این بحث کارامدی رو و ناکارامدی رو دو جور مطرح میکنن افرادی مثل مثلا امیر انتظامی چند مقالهی رو اون ها نوشته بودن اونها ناکارامدی رو به اصل دین برگرداندن برخی ناکارامدی رو به کارگزاران برمی گردنن و اینا با هم دیگه متفاوت هستن کارامدی نسبت به کارگزاران رو ممکنه ای سری نخت هایی باشه که بلاخره کارگزاران در جای خود به اون مدیریتی که بایدی اونها گذاشته شده بود در بخش های مختلف در قواه نپرداختن یا نمیتونن به پردازن. اما یه وقتی ناکارآمدی رو به دین نسبت بدیم بیم دی که دین ناکار است و توان حاکمیت رو نداره خصوصا در دوران مدرنیتی یا پست مدرنیتی که امام رضوان الله علیم متقید بودن و این اعتقاد رو مهمویت و صوفی های از همین منظر وارد نظام میشه وارد شورای نگهبان میشه حالا بواسطه یه همین نگاه هم بوده که با یه سری اختلافات هم واجه میشه که من الان اشاره میکنم خب این افراد کلن معتقدن که اصلا دین در امر حکومت نکارامده اصلا برنامه حکومتی نداره امام به دو نقطه اشاره داشتن این که دین کارامده است. اولا و ثانیا تو اصر پست مدرنیته هم این توان وجود دارد که ما بتوانیم بر اساس کارامدی دین به این حوضه بپردازی سریح نگاه هاییست که حضرت امام رسولان الله علیه داشتن حالا بر همین اساس هم مجد کردن چون خیلی معتقد بودن که انقلاب قابل تحقق نیست چه حوضریان چه دانشگاهیان چه مستحان جامعه النهای قائل به رفورمیس مودن یعنی یک حرکت تدریجی اصلاحی نه یک انقلاب که در حقیقت در یک سیستم بیستن و انقلاب روخده داشت و اینا خیلی همی این حرفی می‌زده. حالا اینکه به اصطلاح آیان چه اعتقادی تو این زمینه دارن، اونو من اطلاع ندارم. که آیا همه معتقد بودن به اینکه انقلاب تحقق پیدا می کند یا نه، اونو من اطلاع ندارم. اما اینکه اصل دین کار آمده است، و ما میتوانیم با توجه به مبانی رو که در این زمینه مطرح هست این امر رو پیگیری بکنیم در آثار و گفتمان آیت ما صافی کاملا مشهود هست در اینها جزایشون حتی در یک جا اشاره داره اونجایی که اختلاف بین مجلس شورای نگهبان بود که بالاخره اشاره داشتن به اینکه گاهی از موقع جفسازی ها و مکتب گرایی ها مانندی اینها باعث میشه که اصل اسلام اونجا مورد خدشه قرار بگیره وقتی ممکنه یک حلال و خدا حرام بشه تعبیر سریعه ایشون هست حرام و خدا حلال بشه و یا حلال و خدا حرام بشه اینها اونجا خب نامه نوشتن هست تا برای حضرت امام در اون از شدیدی رو که با مجلس داشتن اما فرمودن که اگه دو سوم مردم دو سبون نمایندگان رأی دادن قانون بشه که باز هم ایشون اشکالاتی رو وارد کردن بحثایی رو وارد کردن اما. یه جایی اشارهی داشتند این که خب ممکنه مثلا در اینجا نظری وجود نداشته باشه در اسلام چون به سراحت گفتن ما هیچ موردی به همین سراحت به هیچ موردی نداریم که در اون مورد ما حرف برای گفتن نداشته باشیم و راهکار نداشته باشیم و دین نظری نداشته باشه یعنی فکر فقه اهلوی یعنی نگاهش نسبت به فقه هم فقه جامعه بود همون نظر امام در خصوص فقه هم خیلی محکم هم تو این زمینه استادان و قرار گرفتن انهایت در اون به اصطلاح نقش عرف و به اصطلاح شر چون به هر حال در بحث عرف باید یک کار تخصصی در مسائل مختلف صورت بگیرد و اینا چون گاهی مثلا نسبت به برخی از چیزها ممکنه حکمی مثلا نداشته باشه در اوتو با اعدام قاچاخشی مواد مخدر و اینها مثلا اون وقت کم کم این مسیر رفت به بحث شورای مسلحت و به بحث مجمع تشخیص مسلحت نظام اینها که در اونجا اگر احجامن به یک نتیجه قاطعی نرسیدن در اونجا بیاد به اصطلاح مسلحل بشد اینها ایشان به شدت معتقد به اسلامیت نظام بودن و اصلا مشروعیت نظام رو همه چیز رو به اون اسلامیت و در مقام تحقق هم به امر ولایت و به اصطلاح جایگاه ولی فقیح می دانستن این نظر صریح ایشون هستد اونها. این نکته خیلی مهمه من الان خواهیشه که دارم اینه که این لجنه یکی از کارهایی رو که باید انجام بده اینه که از مجموعه آثاریشون این دیگاه برجسته بشه که نرهمایت و لازمه های صافی معتقد بودن به کارامدی نظام با فقه اهل بیت علیه سلام خیلی مهمه. و این میتونه یک تا بشه و از آثاریشون هم کاملا شما میتونید این مطالب رو به اصطلاح استیاد بکنید اینا. این نکته اول نکته دوم در رابطه با رقن دیگر بوده که بحث رهبری و ولی فقی حالا بلا شک این زیل همون بحث کلامی به یک معنی که وسا قرار بگیرد اینها چون به هر حال امام رضوان الله علیه این بحث ولایت فقیه رو از لغلای بحث های بیرون آوردن از دو منظر بحث کردن از منظر کلامی و از منظر فقی از که ایشون در هنگامی که بحث اصل ده نظام در غالماعصاتی مطرح شده بود از اون خبرگان اول که خبرگان غالماعصاتی بوده در اونجا ای دادن و حرفی زدن که برخی از آقایان هم مدافع بودن البته به این شکل رای نیاورد ولی از جمله کسانی بودن که محکم تو این زمینه استادن اینم بعد شماها بدید مطالعه بکنید مجموعه اختیاراتی رو که برای ولی فقیه بود در اون پیشنویس اول پیشنهاد اول بحث قبوی مجریه چیزی ذکر نشده بوده جنوب هم بودن که خب یه اگه باشه که اصلا مشروعیت نداره بلا شک یکی از اختیارات ولی فقیه نصف رئیس جمهور هست حالا بحث نصف رو بعد تنظر در آتو با تأیید افرادی که کاندیدا میشن در آتو ریاست جمهوری افراد نقش مردم رو به شکل دیگری مورد اشاره در آن میگه انهایی که این تو عمومی گذاشته بشه منتها در نهایت با بحث های زیادی رو که تو این زمینه انجام پذیرفتن شورای نگهبان شورای بحث و خبرگان اول به تنفیز رعی دادن اونی که تو اونه association. اما ایشون نظرش تنکیز نمیده. بلکه از آقایان آیان، داشت که در اونجا تایید کردن نظر ایشون، مثلا منتظری این نظر رو تایید کرده بودند، اینکه آقایان بود، آقای, اون آقای رشیدیان اونشون هم به نوعی این بحث رو مثلا تایید می‌کردند. و معتقد بودند که مشروعیت نظام مشروعیت نظام به حاکم اسلامیه. و حاکم اسلامی را از این جهت مبسوط و می با همه شرایطی رو که برای حاکم اسلام مطرح هست مرحومی هم رضوان الله هلی می که اگر اون شرایط یکی نباشه لازم نیست خبرگان ازل بکنه ولی فقیه و خود بخور از می شود خیلی سخت گرفته میشه در اوتباه اون شرایطی رو که برای ولی فقیه زیب شده اینها. خب بلاخره ما دست به و نداریم تنزل کردیم و به ادالت منطقه ادالت رو خیلی درجه بالا یعنی سختگیری زیادی در حوزه ادالت و مانندی این ها هستن برها این در اون بخش دوم بحث یعنی بخش به اصطلاح حاکمیت البته شجاعت هم داشتن یعنی یکی از ویژگی های این بوده که هیچ مزایقه نداشتن از اینکه نظر سریعی باشه رضیف نکنم اینا من حالا یکی دو نمونه رو ارز میکنم اینا حالا اون مقداری که من یادم هست این یکی در بوده سازمان اطلاعات و امنیت بوده خب یه زمانی آماده بودن پیشنهاد کردم که از این عبارتی هم که دارن ارز میکنن. باز هم نگاه ایشان کاملا روشندتر میشه در بحث حاکم اسلام آمدن و پیشنهاد کرده بودند که ما میخواییم سازمان اطلاعات و امنیت رو بر عهده یعنی که از اختیارات ولی فقیه بدانیم و اینها ذکر بکنه ایشون به سراحت مخالفت کرده. بعد که اینکه آقا قانونم تصویف شده و به غیره گذاشته صورت است اینها اون به امام رضوان الله علیه پیغام دادن دو تا استدلال آموددن استدلال اول این بوده که این برخلاف و قانون هست اما در این حال در این حال امام به عنوان حکم حکومتی این اختیارات رو دارد و میتواند سازمان اطلاعات و امنیت رو زیل مجموعه خود قرار بدهد چون یه وقتی مفصل این بحث مطرح بوده خیلی مفصل این نکته اول، نکته دوم اینه که به هر حال دستگاه امنیتی و دستگاه اطلاعاتی گاهی از موقع با شرایط استثنایی مواجه میشه. یه اتفاقاتی صورت میگیره نسبت به مثلا ممکنه یه بیگناهی و از ساعت که مورد شهادت قرار بگیرد اینها این بعد نسبت داده میشه به رهبری نظام. این چه میکنه اون جایگاه رهبری نظام رو و قداستی رو که برای رهبری ذکر شده است این پیغام به حضرت آقا به امام رزبان الله علیه میرسه و امام قبول میکنه و میپذیره یعنی استدلالی رو که آیتاللاز ماهی گلپایگانی داشتن اینها و, و نقطه دیگری رو که باز یه نامی خدمت حضرت آقا مینویسه امام مینویسه و میفرمهید که اگر ما کوتاه بیاییم در رابطه با مسائل اسلام ایشون این تحبیر رو داشتن کوتاه بیاییم در رابطه با مسائل اسلام ممکن است مجلس به قوانینی به اصلا رو روی بیاورد که این قوانین برای آینده کشور به اصطلاح سخت باشه که انسان بپذیلد اینا و کشور رو به یک مسیر دیگری ورن. چون ایشون که به شدت و به شدت با کسانی که ادعای روشن فکری میکردن و سکولاریزم و امثال زاده میکردن به شدت مبارزه میکردن یعنی با جریانهای غرب گراوی و امثال زاده کن به شدت حالا این نکته که ایشون اشاره کردن در بحث دموکراسی. حالا با این ادبیاتی دو که در قرب مطلح به شدت مخالف بودن و اینها و از هرچی که بوی غ درش استشمام می‌شد از هرچه که بوی سکولاریزه کردن درش استشمام می شد استشمام به شدت ایشون مقابله میکردن و با این نوع جدیان ها هم تعارف هم نذاشتن یعنی ایشون رو به اصطلاح اینکه بخوام تو جریانی که در اون زمان حالا اون زبانی که حالا مرجع نبودن در خطوط کشور قرار بدیم ایشون به لحاظ خطی تو جناه چپ و راست هم سالوزاری قرار نمیده ایشون این سری ملاکاتی داشته که اون ملاکات جلو میرفت و پیش میرفت تا این لذا گاهی اگر این طرف بود نقد میکردن گاهی اگر اون طرف بودم هم نقد میکردن جایی که نصیحت بود نصیحت میکردن وظیفه خودشون میدانستن که به است و اعتقاد رو داشته وشن نقطه دیگری که ایشون در بحث نظام که من خواهش حالا من فکر کردم که ها هاجان تشریف نمیارم میان دیگه نه یعنی نمیان من میگم میشونم میگم دینم خواهش کنم ان شاء الله عنایت بفرمایید تو این بحث یک نسبتی به ایشان داده شده که ایشون قائل به هست نبودن یعنی مصلحت ملزمه با معنای دقیقی کلمه جای محمدی بود صدیه بزرگوار آخر نشست بشت. بشت. خیلی خوب حالا سلام ما رو بهشون برسنه خیلی مشتاق بودن که ایشون رو زیارت بکنن رو این نکته من فکر میکنم باید دقیق کار بشه این نکتی که در آن عزم میکنن خب ایشون درباب قضا قضای اسلامی معتقد بودن که قضا قاضی مستقله و اونچنان مستقله که هر کسی رو میتواند احضار بکنه بر اساس اون شرایط لازم من تو شرایط لازم برای قاضی رو خب سخت میگیرن دیگه در فکر و شریعت اسلام خیلی سخت گرفته میشه علاوه بر اون شرایط که مشتهد داشته باشه شرایط دیگری هم بر شرایط قاضی افزوده میشهد نظرش اینه که در نظام اسلامی قاضی باید شرایط لازم رو داشته باشه و اگر این شرایط لازم رو داشته باشه تمام اون به اصطلاح احکام استقلال قاضی و امثال ظالک و اینها دیگه برش جاری و صادی خواهد بود این ها در خود خوب جرس شورایی مگهبان یه بحثایی مطلح شدود بین برخی از عازم در اونجا می گفت که این الاخره به لحاظ یک تئوری به لحاظ یک نظر نظر کاملا درستی هست البته سوال علی قاعده بود اجازه نشی فیلمی یالله اول شهری خوب ان شاء الله اول جنو این نشان میدهد که شکنده. در واقع تازه نظرشون این بوده، ولی در مقام اجرام ما با مشکل جدی مواجه هستیم، ما مو که قاضی که مجموعی این شرایط رو داشته باشه نداریم اینا.شون اشاره میکنه در اون بحثی رو که در به اصطلاح در همون جلسه مصرح بوده گفت ما به دلیل انصداد یعنی ناچار میشیم اگر دسترسی به, به اصطلاح قطع زن نداشته باشیم اونجا دیگه ای نداریم به اینکه زن به معنای عام رو بپذیریم زن مطلق رو قبول بکنیم ناچاری دیگه نداریم ما به این دلیل اگر در مقام اجرا اگر در مقام این نقطه خیلی دقی اگر در مقام اجرا قاضی با شرایط نداشته باشیم باید تنظر بکنیم حکم و قضا رو به کسانی بدیم که ممکنه خودشون مستقیم دسترسی نداشته باشن اون اشتهاد لازم رو نداشته باشن نتونن از قواعد مدونه خودشون حکر رو این پس ایشون به نوعی بحث مسلحت رو مسلحت منظمه رو در جای خود در زمانی که ما در حوزه اجرا نیازمند باشیم پذیرفتم و قبول کردن اینها. به هر حال از که اگر ما بخواییم مجموعه دیگاه های ایشون رو هم در رابطه با اسلامیت نظام کرده فقه باشه که معتقدم به این که فقه میتواند کارآمدی خودشو در اداره حکومت داشته باشه در بحث حاکمیت هم از کردم دیگاه و نظرشون چی بوده؟ در بحث اختیاراتی رو که برای حاکم اسلامی بوده ایشون از ناقدام بودن نسبت به اون پیشنویسی رو که مشخص شده بود و البته بحثایی هم در این زمینه مطرح بوده که مورد اشاره قرار گرفت و در خصوص به اصطلاح حالا مردم هم و خدمت به مردم اونا دیگه است که در جای دیگه که به عنوان رکن دیگر نظام هست باید در جای خودش بحث باشه دارن این من گفتم فقط برای اینکه مختصمیتون بخشم نه دیگه انا میخوام که بسیار هم برای اینکه به اسطلاح من خیلی دوست داشتم اولادتی از برایانات استاد علی استفاده بکنم تو تو اون بحث مثلحت و عرف و اینا دوتا اثر خیلی از حالا ما خبری حضوری با هم دیگه نشستی نداشتیم این اولین نشست بود ولی علاقمند بودم که از نظرات ایشون هم استفاده بکنم اینها ولی با توجه به اینکه من یه ای محدودیت زمانی داشتم و این جلسه دیگه برخلاف برنامه‌های از قبل بود اینها بستم هم این موضوع پیدا بکنم ارزع داشته بشه بشم نسبت به این حضور خوش میکنم از منظر فقیه کارگزار به این گوزه هایی که عرض کرده می شده تا این موارد نوشتن نوشتم که انشاءالله دیگه در جای خودش ما هم میخواید رعایت وقتیم کنیم متشکر تیلالله تشکر میکنم بیانه وافی نراوساد نراوساد از که دو مدنای دینی شروع کردن نگاه حد اکثریه به دین از منظر حضرت حیات الله صافی همسو با نگاه عزت امام و برخلاف روی کرد دوشن فکرانه مدرن ناخرامدی رو به دین بر گردنه و بر جامعیت دین تحکید فرمیدن دق دقیقه حفظ فقه و رعایت فقه و سیانت از احکام الهی رو داشتند در بحث مشروعیت نظام مشروعیت ولی عمر و مشروعیت آفرینی ولی عمر رو در تای حق پکرانی به کار بزاران موضوع تاکید و اشاره فرمدن به ویژه در مساق ریاست جمهوری که از طرف ولی امر باید منصوب بشه هرچند این رای نیورت و به سطح تنفیز تقلیل پیدا کرد دق دقیقه سیانت از احکام و شریعت منافعات پایین نداره که مسلحت ملزمه رو در مواردی که مثل سنجیه ها و مثل گریزی های تدبیری کنه بکنه اون میزانی که این اختضا وجود داره بپذیرند و عنوان مثال در بحث عدم تواجد شروط و شرایط در مثلا امر قاضی رو مطرح فهمدن که طبیعتا این میتوانه راهی برای توسعه این مقوله در سایر موارد باشه یعنی یک الگوی نظام مستمبت دینی و الگویی که برخوردار از مشروعیت است برای نظامسازی بیرون تا یه آن خواهد شون خیلی بهتر گفتن نمریشو خیلی بالاتر از هموری بزن جا اجازه میتنم